زوریه الله بسم الله الرحمن الرحیم. مسوریم فی رطم منشور و المعمور و السقف الموفوع و البحر بنام الله کبک شار جندوو بر رحمت است قسم بکوه تو و کتاب نوشته شده در صفحه گسترده و قسم به بیت المعمور قسم به این سقف برافراشته، و قسم به دریای پر و که مجازات پروردگارت واقع شدنی است در برابر آن هیچ دعف کنندهی وجود ندارد روزی که آسمان از هر سو به جنبش شفتد و ها به حرکت در پس در آن روز وای بر تکزیب کنندگان و حقاقیق. همانها که سرگرم اوها خویشند آن روز که آنها را به سوی جهنم کشند، گفته شود این همان است که آن را تکزیب میکردید. آیا این جادوست یا شما چشم بصیرت ندارید؟ به آتش درایید چه صبر کنید و چه صبر نکنید، برایتان یکسان است. شما فقط به خاطر عمل کردتان مجازات میشوید. کسانی که حرمت خدا را نگاه داشتند، در بهشت ها و نعمت ها و از آنچه پروردگارشان عطایشان کرده، خوشحالند و پروردگارشان آنها را از عذاب جهنم حفظ می نماید. بخورید و بیاخشامید گوارایتان. این نتیجه عمل کرده خوبتان است آنها بر روی تختهای کنار همچیده شده تکیه دادند و هوران بهشتی را به آنها تزویج کرده اید.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 آنها که به حقایق ایمان آوردند و فرزندانی را که به طبع آنان ایمان آوردند در بهشت به آنها ملحق می و از پاداش اعمال آنها چیزی نمی کرایی. بدانید هر کس در گروه اعمال خیش است بیوسته آنها را از انواع میوهها ها و گوشت هایی که دلخواه شام است بحرمند من سازید. همواره به یک دیگر جام هایی که در آن نه است و نه گناه. نوجوانانی به خدمت دور آنها می گردند در حالی که مثل مرواری در صدفند. رو به یکدیگر کرده و پرسش می کنند. گویند قبل از این ما در میان خانوادهمان ترسان بودیم سرنجام خداوند بر ما منت نهاد و ما را از عذاب کشنده حفظ نمود ما پیش از این او را میخواندیم و او با احسان و با گذشت است بانها پند و تذکرده زیرا تو به لطف نعمت گارت نه نکاهن هستی و نه ندیوانه شاید ادعا میکنند کنند که او شاعر است و ما انتظار مرگش را میکشیم بگو منتظر بمانید من نیز با شما منتظر میمانم. آیا رویاهایشان آنها را به این اوها میکشاند یا اینکه مردمی تو آنها میگویند بر را به خدا نسبت میدهد آنها اهل ایمان نیستند اگر راست میگویند، سخنی همانند آن بیاورند آیا آنها از هیچ خود به خود پدید آمدند یا اینکه خودشان خالقند شاید هم آسمانها و زمین را خلق کردند؟ نه آنها به حقایق یقین ندارند آیا به خزائن پروردگار دست یافتند و یا بر چیزی مسلط شدند آیا نردبانی دارند که به آسمان بالا می روند و وحی و اسرار الهی را می‌شنوند اگر کسی چنین ادعایی دارد دلیل روشنش را بیاورد آیا برای خدا دختران است و برای شما پسران آیا تو از آنها مزدی می‌طلبی که پرداختش برای آنان سنگین است هم الملائكه میدانند و می نمیسند. شاید هم نقشه‌ای برای تو کشیدند. اما خود کافران گرفتار هیلتند. ام لهم اله غیر الله؟ سبحان الله عما عم یشرکون. آیا خدای غیر از الله دارند؟ منزه است خدا از هرچه شریکش می چون چنان غرق در باطلند که حتی اگر ببینند پاری از آسمان بیفتد میگویند ابری عبری بود پس آنها را رها کن تا روز مرگشان را ببینند روزی که مکرها و نقشهایشان هیچ به دردشان نخواهد خورد و به واسطه هیچ کس یاری نشد برای ظالمان غیر از این عذاب عذاب است. هرچند اکثرشان نمیدانند. در برابر حکم پروردگارت صبور باش که تو کاملا تحت نظر ما هستی هرگاه برمیخیزی تسبیح و ستایش پروردگارت را به جایار در پاری از شب به نیز هنگامی که ستارگان ناپدید میشوند خدای را تسبیل گوی وصبر لحکم ربک فإنك بأعیوننا وصفح بحمد ربک حین تکون و من اللیل فصفح صدق الله العلی العظیم رابز خداوند بلند مرتبه و عزیم خاری از پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و, علیه و سلم.